شیخی بزنه فاحشه گفته مستی هر لحظه به دام دیگری پا بستی گفتا گفته شیخا هر آن چگویی هستم اما تو چنان که مینمایی هستی عالم همه گرچگوی افتد به کوی من مست و خراب خفته بر من بجویی دوشم به خرابات گرو میکردند قمار همی گفت که نیکو گرایی گه گشته نهان رو به کسی نن مایی، گه در سوبر کون و مکان پیدایی، این جلوگری به خیشتن بن مایی، خود عین ایانی و خودی بینایی. گر روی زمین به جمله آباد کنی، چندان نبود که خاطری شاد کنی، گر بنده کنی به لطف آزادی را، بهتر که هزار بنده آزاد کنی.